به دام تو دل مبتلای خیشتن است بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است گرد زده است برایت مراد خاطر ما به دست باش که خیری به جای خیشتن است به جانتی بوت شیرین دهند که همچون شم شبان تیره مرادم فنای خیشتن است چورای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل مکن که آن گل خندان به رای خیشتن است چورای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل مکن که آن گل خندان برای خیشتن است به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج که نافهاش زبند قبای خیشتن است مرو به خانه ی عرباب در که گنج آفیتت در سرای خیشتن است به سوخت حافظ و در شرط عشبازی او هنوز بر سر عهد و وفای خیشتن است